بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین علی رسول الله علی راجب مجمل و بحث را به نصفی بودن و مطلق بودن مسئله مجمل و مقین از شد که مرگوم استاد رضان الله تعالی مجمل و مقین را مطلق میدونن و نصفی نمیدونن و از کفایه نقل کردن که نصفی یه توضیح در که رسی گذشته صحبت شد راجب این که احتمالا مبنای این خلاف چی باشه یکی از دو احتمال رو از کردیم یکی راجع به حقیقت وقت و یکی هم راجع به مسئله اینکه آیا وشت وجید زهور کشف مراد یا همون میساقه وغلایی به تعبیر ما که گذشت و انتحافن مبدع نظار رو این دو برش قرار دادن خیلی روشن به نظر نمیاد. سه احتمال هست اما خیلی روشن به نظر نمیاد. و اصولا این مطلق و نصری بودن در اینجا خیلی واضح نیست و محکومه چندان واضحی رو نداره چون انشالله خواهد آمد در برس مطلق و مقید که یک دلیل ممکن است به یک لحاظ مطلق باشه اما به لحاظ دیگری مقید باشه یعنی اونجا نسبی بودن معنا داره در مطلب و مقید ممکن است مثلا این دلیل مثلا به این جهد اطلاق داشته باشه مثلا اکثر علماء قدود نسبت به اینجا پس مثلا ایرانی باشی با یا به با ایرانی اطلاق داره اما نسبت به ادالت و فسق مقید این صحیحه در اونجا خواهد آمد که مطلق و مقید نسبی هستن یعنی یک دلیل واحد نسبت به یک جهت اطلاق داره نسبت به یک جهت این داره. اما در مجمل ما وگر این تصویر نمیشه خوده این اصلا تصویرش خالی از اشتال نیست مگر اینکه مراد از نسبی بودن این باشه که ممکن است یک دلیل واحد به لحاظ مثلا یک برداشتی که ازش میشه واضح باشه نسبت به یک برداشت دیگری که ازش میشه در اون قسمت اجمال داشته باشه این امکان داره این محل و همین همین هم هست که آیا نسبت به اشهاد سر میکنه یا نسبت به جهات محنافه هست کنم این خود اصل مطلب باید ارتداعا رو بوشند بشه تا بعد معلوم بشه چه زیر بنایی داره بشه. انصاف قضیه اگر مراد از نسبی بودن این باشه که هر دلیلی یک قسمت هایی رو ظهور داره بیان داره واضحه و یک قسمت هایی اجمال داره ابهام داره و این ابهام و اجمال رو مثلا بعضی از خواه ها با بعضی از شواهد بر بعضی از خواه میگن شواهد کافی نیست اجمال با حال خودش باقیه اگر مراد این معناست، خوب همینطوره یعنی واقعا دلیگ واحد ممکن است اصفت بعضی از جهاد اجمال داشته باشه و ولو ادهی سعی میکنن با شواهدی اجمال رو رفت بکنن دکن انصافاً ممکن است با تأمل زیاد اون اجمال رفت نشد و این شبیه همون است که در روایت مبارکه که در جلسه گذاشتم عرض کردم نرسود از پیغمبر اکرام روبه هامل فقهن الامن هوا افتقومه و روبه هامل فقهن الامن لیست به فقی این مطلب ارز شد در روایات هم آمده را حضرت فرمودن ان لا دانا بول کلمه ولا نامها سبون مخرج این که کلام ممکن است تا 70 معنا مثلا نکات و ظرافی در اون پیدا بشه نه باد مراد کفایت یعنی اشکال و جواب عالی نمیشه و هر حال اگر مراد از نصبی بودن این است که یک دلیل ممکن است به جهات متعددی ابهام پیدا بکنه خب این هست این یک واقعیتی که در لسان به اصطلاح عرفی ما در لسان عدله ما در لسان روایات و آیات مبارکه هست انبتی نکاتش مختلف. گایی وقت نکته اجمال مخصوصاً در مواردی که راجع باقاعده این است که الفاظ یک فهم عرفی خاصی دارند توی معانی غیبی و معوراقه غیب و در معانی که در فقط آلاج کار برده میشه ممکن از کاربوردون الفاظ در اون حد نباشه حتی آیات واژه ان الله علی کل مثلا خب بحث کردن که این شیء شامل ممتنعات میشه یا نه مثلا خداوند قدرت بر اجتماع نقیزه یا افتبا نقیزه از این بحثی که در کلام شده خب این منشأش این است که تصور شده که هر چیزی که شما تصور بکنید شیء الا ممکنات آدم باشن شیء پس انما و الله را کلش این شيء قدير خدا باد بر اونها هم قدرت داشته یا ایجاد شایک ال باری اولای در سادگیمتون یک سری از بحث ها و اجمال ها را به این مقامات که طبعا الان تو بحث و اصولی ما نمیاد اما الان تو بحث و اصول بیشتر کاربرد بحثه ما در آیات و روایات است که در احکام این یک مقدار یعنی یک بنظر اینه که طبیعت بعضی از ادله یک نوع به اصطلاح چون نازره به یک مقام خاص بودن یک نوع به اصطلاح ابحام ها و اجمال هایی رو پیدا میکنه مثلا فرض کنید الان ما در آیات احکام که در بران داریم به این آیات احکام با یک نوع اجمال رو بروه هستن اجمالش هم به خاطر این که اینها به منزله قانون احساسی بودن تبیین اساسی شدن و یک خصوصیاتی قیودی و مخصوصاً که بعدها احل سنن عدلهی رو که داشتن نسبتا کم بود مجبور شدن از آیات مبارکه بیش از اون مقداری که زبانه آیات اختزام میکنه استفاده بکنن این رو ما داریم این مقدار فرض کن مثلا فرص وجود وجو و, و ایدیه از مرافق رو اینا مثلا معتقل که از آی مبارکه ترتیب در نمیاد. ما به هر نحوی که شده میتونیم دست چپ رو مقدم بکنیم دست راست رو مقدم بکنیم صورت رو فهم نمی کنیم. خب ببینید خود آوردن لفظه واق فخص رو وجود کن رو کن و خود اینکه آیات و قرآن غالبا و به اصل قانون و اصل تشریعه موجب به این نوع ابحام ها و, و, و اجمال ها شده خود همین آیه وضو که الان صدر رو گراه کردم خب ظاهرش خیلی سخت قبوله ظاهرش چون میگه فین لامس و انساب کجا احد منف کجا احد منک راذ اللهمس و انساب و چون تو مرزا و علی سفر فرنتجدوا ماء فتمموا سعیدا طیبا ظاهرش اینه که اگر انسان مریض بود و یا در سفر بود و آب پیدا نکرد اون وقت تیمم بکنه خب این معناش اینه که این سال مسافری که آب داره خب با وضو خب معناش هم این خواهد بود که مریضیه که آب داره با بگیره زارش این فرق دیگه. اگر شخصی مریض بود، مرض سختی هم داشت، لکن آب موجود بود، با نزو بگیره. چون مرض با سفر در این آیه مبارکه با هم دیگه ذکر شده. خب اگر ما باشیم بگیم اگر مثلا در حال سفر، در حال مرض مطلقاً همون رو بگن، خب بگیم تو حال سفرم مطلقاً همون بگن. فهمیدید؟ اگر بگیم در حال سفر در حالی که مسافره اگر آب داشت باید وضو بگیره که فتوان همینه خب مسافر اگر آب داشت باید وضو بگیره خب ظاهر آیه اینه که مریض هم اگر آب داشت باید وضو بگیره در اصلاح دیگه نه اگر آب نه نداره اگر فلم تجدو داره فعنلم تجدو نیست اگر مریض بودین یا مسافر، ظاهرش اینه که دوتار در یه به حفظ قرار داده پس اگر انسان مصادر آب داشت حوزو میگیره انسان مریض هم آب داشت با روزو بگیره یا پست بگیره ولو این مرض به شدت با استعمال آب منافی باشه مرض که الان هم هستی خودمون بید هست دروزی مختلابی مرض آمفلازه قبیس بودی مرض است هست که این نمیتونه باش حوزو بگیره خب میبینه همین آیه در مورد خود وضوع هم که ایک آیه شکلی ظاهرش ایج... آدم ایجاده اشکال نمی کنه. اما ظاهر این آیه مبارکه این است که در حال وضوع در آب هم اگر انسان مریض هم بود آب داشت با وضوع رو بگیریم و تقصه رو بکنم البته یه رواست هم داریم که توصیف به سریع هم شده اصلاد فراوان داره که از ما میفهم من مریض بودم به شدت بحیثی گفتم حتی من روی اون من رو قوس قرار بودن و من بریزن بشه در این اینقدر مدید که اون میتونست بنیشیدن حتی خود ایشان و فهمونده که باید انسان قوس بکنه مهم خب این قطعا اون رواید که عمل بشنه شده و قطعا بنایه اصحاب و فوقها این نیست که در حال مرز مرزی که سخته و مزر بردن اینسانه آب داشته باشه ووزو یا قصر بگیره. و که ظاهر آیه اینطور عرض و من این بود که و افتداعا هم انسان تصور معنای خاصیم. اگه بگیم نه با مرز کلن نباید وزوری گیره ولی او آب داشته باشه خب معنایش اینی که با مسافر هم هم چون دو تا پردو هم شدن این دو تا مرز و مسافر در هم آیه وزورتی هم اون با هم در هم تو آیه سون و منگاه نمی کن مریضن و علا سفر و لذا در سوم هم میدونید اهل سنت باز با ما مخالفت دارن در حال سفر روزه رو میگیرم پس این آیه مبارکه با اینکه ظاهرش این طوره لیکن خب نفقه ها نه اصحاب رو, رو عمل نکردن و روایت رو قطعا این آیه مبارکه رو باید قطعاً با روایت و زوه سنت رسول الله معنی کرد اون اینه که سفره که انسان بلده بلده بلده من من سفره یعنی مثلا سلام رو بزنیم به خصوص مرز سفر مثلا چهار تا حالته اون حالات که حالات خاصی نیستن. از اینجا احد منكم من الغائل اول او سنساب و كنت و على سفر خب اون جا احد منكم من اونجا هم چهار تا حالت در این ریعه آیه آمده جا عرهد و ملکم نفاید. او لامست و نسا. او کنت و و علا سفره فلمتجدو ما انتزه اما و شما این فلم تجدو فقط به رسکی که مرزه سومی سو نزنید و اول و دوم و چهارمی بزنید فقط سو به سومی نزنید <تصفيق> موضوعیت ناد... موضوعیتش منی بودنه نه آف داشتم خب زاهره لفظه من دارم عرض می کنن این چهارتا پشت سر هم آمنن شو باید لب تجدیر رو فقط به سه تا بزنیم به سه بومی ندنیم به اولی و دو و چهار بومی بزنیم اما به سه بومی ندنیم این اجمال هم این بحث اجماع دارم این کار ندنیم زاهره آیه این طوره با که خب فتواه برین نیست و من چه قصه رو ارزو کنم که گاهی آیاتی که ناظر به قوانین کلی و قوانین اساسی هستند این آیات خواهی نخواهی یک نوع ابحام پیدا میکنن یک نوع اجمال پیدا میکنن که بعد این اجمال رو بزنیم روایات و سنت رقمبر شرد داد خود این آیات میشه شردی داد حالا این جاش علامه اینجا نیست که میتول میکشه یا تو بحث فیل داره بحث دیگری من اشترای طورتی اصلا که به این قسمتی که تا اینجا پس بنابراین خوب قدرت هم این که در بر از روایات ما یا در بند از قصان عدده شریعه ما یه نوع اجمالی وجود داره این رو میشه این کار کرد اما از این که ما بخواهیم بگیم اصولا اجمال و بیان یعنی ظهور کلام یک یعنی امر نسبیه اصلا سبات و استقرار نداره که الان به بعضی قرمی ها میگن در تفسیر هرمونتیک انصافاً اثبات این مطلب مشکله یعنی انصافش اینه که دلالات در این جهت هست که کلام ظهور داره یه قسمت هایی از کلام ابحام پیدا میکنه که اون هم نقاط خاص خودشو داره قابل تحلیل اینطور نیست که مثلا یه مقدار ابحام از کلام داری به خاطر ابحام نیست که خود اون معنا داره مثلا ما لحظه خیلی روشن و واضحی مثل آب داریم خب بلادش کار آب مصادیق بسیار روشنی داره مصادیق فراوانی در خارج داریم که به اونها آب گفته میشه اما در اینها مصادیق مجمل و مبهم هم داره فقط آبی که توش مقدار خاک بیش بیشد اندازه گل نشده اما هنوز روان هست آیا این بینه آب گفته میشه به اوقات به خاطر خود معناست گاهی به خاطر ابحام به خاطر اینکه مثلا جزء عوالم قیده برستم اون مثالی که ارز کردن گاهی ابحام به خاطر به اصطلاح گریانات خارجی که در اون زمان مطرح بوده و این نقطه ای ابحام و اجمال در روایات ما روایات امامیه بیشتر مطمئه نظره ما یک مشکل بزرگی ولذا همیشه ارز کردم که مثلا متون اهل سنت رو باید و خیر احل سنت هر کدوم رو با به خودش روشن کرد و واضح و توضیح داد ما مشکل بزرگ ما که غالبا روایات ما به صورت سماعی و شفاهی از ائمه ما در مدینه بوده و غالب روات ما هم در کوفه بودن یعنی روات از یک جا بودن و امام از جای دیگه و که امام فرموده غالبا به صورت شفاهی بوده بعد در کوفه اینها تدوین شده صورت کتبی شده و اون تدوینهاش هم مختلف بوده خیلی هاش منظم نبوده مرتبط نبوده بعدها یک مقداری تنظیم پیش آمد از این تنظیم زمان امام صادق هم بود، اما بعد بیشتر شد. مثلا روایت سلاس رو یک جا روایت زکات رو خواهی نخواهی سؤالی رو که سؤال میکرده، شروع شد به تختیر یه سوال در رکوع بود تو میولند، ممکن بود یک کلام بود نصفش تو رکوع بود نصفش تو سجود بود در مرحله تدیر آن نصفش کرده. این روایت بود ممکن بود که یک قرینه ای در بخش رکوع بود این قرین تو بخش سجود نبود لذا یه مقدار امهام ها و اجمال هایی که در روایات ما خصوص الان در روایات امامیه وجود داره که باید خوب کاملا در این جهد ایشی دنبال شد مسئله کیفیت تدوین به اصطلاح مسادر اولیه ماست که اینها به چه صورت تدوین شدن و بعدها چیجوری به ما نزیدن خب اده زیادی از این فروعی از این مطالبی رو که ایم نگفرموندن اده زیادیش روایاتی بوده که خود اونها از رسول الله نقل کردن و در نقل نقلع ما ممکن بوده کم زیادی پیدا بشه فرسویم مت معروفی که از رسولانه ال کردن المؤمنون یا المسلمون اند شروع میشه بلکه علیه والسلام مت این قید رو اضافه کردن الا شرطن اهل الحراما و حرم الحلاله که تصضح همین محل کلام شده که معنی این اباظ کنی چی الا شرطن پس دقت بکنید ما باید تمام این جهات رو در نظر بگیریم شاید مراد کفایی این باشه که الان ایده از اجمال ها که پیدا شده اینها رو با تحلیل های تاریخی رجالی، فهرستی، حدیثی فتوایی، شواهد تاریخی ما با اونها می این اجمال ها رفت بکنیم و برداریم اگر تو بعضی ها ممکن است از فقها این شواهد رو قبول نکنند و اون اجمال به حال خودش محفوظ باشه پس بنابراین ما در محور اول که سه محور من در جلسه قبل عرض کردم که مهور و غرف باشه صافت دلالت و ظهور یه امر مطلق نسبی نیست موارد اجمال نسبتاً کم بیشتر برمیگرده به داره معنا و در مورد فقد که الان ابتلای ما هست یه مقدار زیادتر ما اجمال داریم لیکن این اجمالها چون همه بالاخره در یک محدودی فکر بشری هستن این در یک محدودی تاریخی هستن قابل تحلیل هست می توانیم اونها رو تحلیل بکنیم حتی گاهی نیاز به تحلیل‌های لغوی داریم تحلیل‌های خاص مثلا اینکه اجتماعی داریم عرفی داریم اینها چیزی نیست که نتونیم اونها رو تحلیل بکنیم یا یا نکات ابهام و اجمال رو توضیح بدیم و در بخش سوم که مربوط به اعقال و اوال بهیدی و فص المدعه و ما عام برزخ مفاهیم بسیار عالی میشه طبیعتا حتی روایاتی که الان ما راجب به ملاهم و فتن آخر زمان داریم توی اینهای منداری اجمال و ابهام بیشتر میشه هرچی از دائره محدوده اسمت های بشری خارج میشه به جهاد می میرسه باز دائره اجمال و ابهام طوسی بیشتری پیدا بکنه اما این روی هم راستیه همه رو که با هم حساب بکنیم ما کلام چیزی نیست که اصل ظهورش و اصل بیان بودنش نسبی مط... نسبی باشه نه مطلقه ابهام هم برای او آرز میشه که قابل حل و فصل این راجع به این قسمت که ان یک تفصیل بیشتری راجع به این مطلب این محضاله که ما مستسر خیلی صحبت کردیم اینشالا تو محضت ضرورات عرض می کنم بحثی که الان محضت کردیم بحث مجور و رویهن تمام شد که هست در این استاد. آخرشون آخرش متعرض شده بودن قبل از بحث به اصطلاح اسطلاح مرقل مرقیم بحثی سنام مطلع و مقید که در کتاب اصول ما و اهل سنت فراوان بحث شده و بدون شده که از بحث های اصول حساب میشه بحث مطلب و مقید از که روش ما اجزاان تر روز به کلمات مرحوم و استاد از از محاضرات بیشتون در همین جلی که من دارم چاپ که من دارم چابتای بردی میمیزنم از صفیه 344 و بعد نسبتاً بحث مطلب و مقید رو طولانی عورده از خواست 382 شد, متعرض شد. در بحث اولشون که در... متعرض شدم مثل بقیه علمای اهل سنت هم این کار شده یک متعرض معنای مطلق و مغییت شدم چه معنای لغهی و چه معنای استلاحی و بعد هم در کتب اهل سنت متعرض یک مقدار بیان مصادیق شدم که آیا اینها به مطلق هستند یا نه و تحلیل هایی راجبه اونها دادن به صرفون اسم جنس و علم جنس و نکره و معرف بلام و مفرد معرف بلام و خار اینها جزء مطلق هستن یا نه خصوصا که ادعی از این الفاظ اونها رو جزء عام قرار دادن ما تو بحث عام این بحث رو مطرح کردیم که عام و مطلق در اصطلاح اصولی با هم یه طرح میکنن این یک مقضاری هم در بحث آم متعرضه دوی از مسادیخ شدن که آیا جزو آم هستن یا جزو مطلح عکسش هم باز اینجا متعرض شدن مثلا مفرد معرف بلان اکرمل آلم آیا این اکرمل آلم جزو مطلق حساب میشه یا اکرمل آلم جزو آم حساب میشه و تفسیر آم گذشت و حالا بارد تفسیر مطلق و بیان بعضی از مسادی. و بعد از اون هم بیان احکام مطلق و مقید آیا مطلق هم به مقید میشه یا نه و راههایی که هست پس بنابراین تقریبا سه بخش اساسی تخصیل میشه ما فعلا همون قاعده خودمون ابتدا یه مقدار کلمات و استاد رو میخونیم و بعد یک توضیحات رو راجع به این مطلب یه مقدار سابقه یه و توضیحات راجع به سابقه مسئله رو میگیم و بعد هم راجعه به خصوصیات که صحبت شده یعنی مطابقی که صحبت شده نردار اعتقاد هایی و عرض بخش اول کلام میخون تفسیر مطلق چه در لغت باشه در غرفه میشون میفرماینی که مطلق خودش طلاق به معنای مطلق بودن در لغت عرب به معنای بودن و آزار بودن خود کلمه طلاق مطلقم از این جهد عرض شده یعنی اگر زن در تصرفاتش محدود بود زوجه و محدودیت داره اما اگر از زوجیت خارج شد دیگه آزاد براها میشه دیگه تغییری به شوهر و زندگی خاص خاص زناشویه با شخص معید هم این لفظه مطلب در موقع تحره به معنی مرسل به طوری تغییر ایشان معنی آزاد براها اونی که هیچ قیدی نداره هیچ بندی نداره در مقابل مؤکل کلمه بی در لغت عرب هم همونای زنجیره که مقتدر هستی چون وقتی که زنجیر میشه یک شخصی نمی‌تونه تصرف بکنه اطلاق نداره رهایی نداره آزادی نداره و مؤکل میگه از شد کراره و نراره یه دیگه تکرار نداره معانی معقوله در اصل از معانی محسوسه گرفته شده یعنی بشر در طبیعت خودش ابتدائاً الفاظ رو برای معانی محسوسه وضع کرده قید یعنی زنگیر چطور مثلا انسانی که در خارج یا حیوان برونست در خارج زنگیر به دست رو پاش بسته باشن تکان نمیتونه بخور محدود خاصی داره در یک محدود خاصی خواهد بود این رو عمر داره تو مقایین اگر یک یعنی مفهومی محدودیت داشت اون اگر مفهومی محدودیت نداشت مثلا اکر ما عالمه. این میگن مقید مقید نیست قید نکرده زنجیری بشه نکرده اطلاع داره ارسال داره رهاز اما اگر و اکرم آلمان آدلن این محدودش کرده مقیدش کرده که ما زنجیری به دست رو پاش بسته عالم دیگه محدودیت بدار کرده در همون حدود به اصطلاح مسئله به اسطلاح, به اسطلاح بودن و ادالت داشتن این به این رسیم پس ایش بود که مطلق و مقید در لغت معنیه محدود بودن و نامحدود بودن، مرسل بودن، رها بودن و معنای اصطلاحی‌شان تقریباً همینطوره، این طور نیست که در معنای اصطلاحی معنای خاصی داشته باشد بلکه معنای مطلق و هیئت و همون معنای عرفی خودشه. اصل شو صابرانه مالشون من فعلا نمی‌خوام بحث بشم، هدف اساسیشون اینجا است این که فرق بین مطلق و آم رو بیان بکنه چون عام به عموم خود جروبات عربی منظور داره شمول در شرعیات اینا در اصول آمدن یک اصطلاح آم قرار دادن یک اصطلاح مطلق و هر دو ریشه لغوی داره عموم به معنای سریان و مطلق به معنای آزاد درها مرسل بدون قیید بحث ایناست که اون در اون معنای اصولی چه خصوصیات رو لحاظ کردن که بعد اینشالله عرض بکن بعد ایشان مرحوم مدیشون بخواییم همه ایشان مناقشه بکنیم بذر یه نظر مطالبیشون رو بکنیم که آنم مراجعه کردن بعد ببینیم مناقشات چی بزرگیم بعد جمله ایه از مسادیر من. بحث دومیشان جمله ایه از مسادیر مثل اسم جنس و حلم جنس و مفرد معرف و غیره کائنها ها مطلق هستن یا نه این که میگه لا مطلق یا نه این نه یعنی گایی اون کس مطلق نباشن آم باشن یا مطلق هم نباشن آم هم نباشن مثلا چیز دیگه نباشن. در اصول این طور نیست یا مطلق یا آم براد بعد ایش رو قبل از این که ما متعرضین بحث بشیم ایشان یک تقسیماتی رو برای اقسام ماهیت در اینجا میفرماین چون لده از کتب و اصول متاخل چیه؟ این تقسیمات مطرح شده ایشون متعرض این تقسیمات میشن ابتداعا این مقدمه رومان تقسیم میچینن می بعد از اون وارد میشن که یک تقسیم برده می مثلا چند قصی داریم لابشرت قسمی داریم محسنی داریم داریم، ماهیت بمهمه محمله داریم و این اقسام رو که بله ماهیت داریم اون وقت میدن که مثلا اسم جنس از این قبیله مفرد مع عقب از این قبیله اون یکی از قبیله. ایکی ایکی ایکی اون قبیله که یکی به اون اقسا اونها رو توضیح میدن. ایشان میفرمایید که ماهیت رو تا از به یول با تا از هم طلا هست به ماهیه دییهشون میفرمایند گاهی چون یک مقداری تقسیم برندی کردن. و این ادبیاتی عبارتی ایشان می‌خواد در توضیحات مختصری بله تا که کل مطلب به ماهیت عرض می‌کنم من که این بحث یاد حالا اونی که ایشون نوشتن دیگه به خاطر احترام بشه ایشون می‌فرمونه که ماهیت تاراتن طلاح از به ماهیتیه طلاح از ماهیه هیه یعنی نظر به ذات اون عنوان ماهیت داریم مثل ماهیت انسان یا حیوان یا آب یا کتاب اصلا نظر ما فقط به ذاته نظر محصول از به ذاتها مثلا کتاب عبارت از مجموعه اوراقی که با هم چسبیده باشن مثلا گلی هم داشته باشن مثلا نمو روز کتاب ما فقط به این نگاه میکنیم به ذاتها و ذاتیاتها به توی ولن یل هزمه ها شیء و ذات هیچ رو نگاه نمیکنه هیچ مرحله ای. حتی این چه هیچ نگاه واش نگاه نگاه نمیکنه یعنی اینقدر این نظرمون بذات هست حتی معرا بودن از غیر رو هم لحاظ نمیکنه هیچ چی غیر واش لحاظ نمیشه حتی معرا بودن از غیر حتی عدم لحاظ هم لحاظ نمیشه ایشون می این ماهیت رو اسمش سوی ماهیت محمله به این معنا که عدم ملاحظت شیء من خصوصیات متعینه هیچی از خصوصیات رو با اون رو نگاه نکنه فتکون و محملتن بالنظر اضافه لاجمیع تلک از خصوصیات حتی ایشون اینجا نوشته خصوصیت عنوان کنه ها هیشون در اینجه بنوشته حتی این خصوصیت که مقسم خواهد شد یعنی صلاحیت انتصام داره حتی این خصوصیت هم نگاه نمی کن. بعد خواهد گفت که نه حتی اهمان رو هم بهش نگاه نمی کنیم نه مقسم بودن حتی این که ما هیچی رو باش نگاه نکردیم باز لحاظ نمی کنیم امین عدم لحاظ رو هم لحاظ نمی کنیم به حیثی که فقط و فقط نظر به ذات اون این نظر لا درباره از عن حدود ذاتها ها و ذاتیات ها الا خارج خارجن عنها از این خارج از این هیچ چیزی رو باش نشده. نشود حتی عنوان اهمال ها حتی اینکه ما اون رو مهمله و قصر نظر علیها و عدم نظر علاقه ای را حالا قصرش نوشته حتی عدم لحاظ رو هم لحاظ نمی‌کنه بله این تابیراها بالمایته فرق خب اگر حتی اهمال هم بهش نگاه نمیکنه خب میشه مایه مهمله که مهمله معنیشه اهمال نگاه کرد میگه نه این فقط مجرد تعبیره و در واقع مراد از اهمال یک اهمال واقعی است حتی اهمال لحظی هم خوش نیست یعنی حتی اینکه مهمل باشه این مقدار هم حال باشه به اعتبار واقع اهل موضوعی که در واقع اینطور بوده لا به اعتبار اخذها در عنوان فی مقام لحاظ مران ها ما داری در ماهیت ماهیت محمل است. که چیز رو با او لحاظ فن نتیجه انه ها در ماهیه میشه بهش که ماهیه محمله میشه بهش که ماهیه مبهمه ایشون دو تا میکنن این میشه مبهم به اضافه علاجمی اتباری ها و خارجی. نه عوارض خارجی و حتی عوارض ذهنی هم لحاظ نمیشه حتی اهمال هم لحاظ نمیشه عوارض ذهنی مثلا بگیم این کلیه مثلا بگیم آب به نحوه کلی حتی این, این نقدار این هم لحاظ نمیشه یعنی اموری که وجودشون و عوضشون در ذهن و تارتن اخرال یلاح از مه ها شیعون خارجون از مقام نه. یه چیزی رو باش لحاظ میکنه و این شکل رو با عنوان مخصمیته ها یعنی به این عنوان که آب رو لحاظ می کنیم که آب یا آب نهری یا آب بحر یا آب لوله یا آب چاه مثلا بله فقط این رو مخصمیته ها چون مخصمیتی که لحاظ می کنیم یعنی صلاحیت انقصاب این صلاحیت انقصاب معناش این است که این رو در جمعی افراد در نظر بگیریم چون که در قابل و جمعی افراد نباشه مخصم نمیشه دون غیرگی فقط همین مقدار که مقسم هست سلمیت ها ماهیت ماریه به ماریت لاب شرط مقسمی این لاب شرط بودنش بخاطر این که نستدر بخصان صلاحیت انتباه داره مقسم هست چون لحاظ شده صلاحیت انقسامش بونا به امکان دال کشی الخارج عنوان تجرد حافی و آهل عقل عنوان این یعنی در اون به لحاظ وجود عقلانی و وجود ذهنی در نظر گرفتیم تجردش رو بله و در وجود عقد ادراک ذهنی هیچ نوع از خصوصیات رو عوارض نداره سن میاد حاله ماهیه در مقابل مهمه بگیم یعنی ماهیت مجرده یعنی در هیچ بونه قید خارجی نداره اما در لحاظ عقل لحاظ شده و فل اصطلاح، ماهیت به شرطلا ایشون در اصطلاح گاهی ماهیت به شرطلا بگن گاهی هم ماهیت منچنده اوهی بهادل و لحی بهادل عنوان غیر قابل است اگر با وجود رحاظه وعای عقلی و وجود عقلیش در نظر گرفتیم قابل حمل بر موجود خارجی نیست چون اونی که در ادراک عقلی است قابل انتباه به خارج نیست به وضوح انه حال و همه در علا خارجی لکنه مشتملتان علاخصوصیت من خصوصیات چون ذخاره در تشخیص دیگه و ظرف خصوصیاته و هاذا خلاف الطرز و هاذا خروفن به تعبیرات تمییذ ماهیت رو چی میگه رو؟ پس... بلا تمییذ این فرع به ادراک عقلی است که میگیم کلیه مثلا و هاذه الماهیه بله بله و هاذه الماهیه که به وجود عقلی به اول هست تو سما بالاسماء تالیه نو بشه میگن جنس بشه میگن فست فست قابل انتباقه به خارج نیست عرض آم و عرض خاص حیث و انها ماهیات ها اناوین دلماهیات موجود فی افق نفس اینها به اصطلاح خودشون محبوب ثانی هستن فلا تصدق علم موجود خارجی این هم یک قسم و امکان زاله کشه خصوصیات من خصوصیات خارجیه سمیدها دهه ماهیه ماهیه مخلوطه یک اصطلاح و ماهیه به شرط اصطلاح دیگر وها دیگر خصوصیه تارتن وجودی و اخرادنیه وارد این تکمیل کلام این چیزهایی که الان اصل تقسیم کلی بود هم ایناست. یکی ماهیت به تغییر ایشون مبهمه هست محمله هست یکی ماهیت لا به شرط مقسمیست که این توش لحاظ شده یکی ماهیت به مجرده هست یا ماهیت به شرطلا هست به تعبیر دیگری ایشان که همون عروز و اختصاصش در عقل مثل جنس و فصل اینها یکی هم ماهیت به شرطی هست به تعبیر ایشان که مقید به وجود خارجی است به خصوصات خارجی مثلا میگه زیدی که اهل ایرانه زیدی که عالمه زیدی که دارای خصوص خصوصیاته یا عالمی که دارای خصوصات اکرام بکنه اون کسطات خارجی رو درش لحاظ میده این انتظام اولی یه توضیحاتی بعدیشون دارن بعدم تطبیقات که آیا مثلا اسم جنس از بسم اول یا دوم دو یا سوم، بوم که اینشارا توضیحاتش رو بعد از میکنی رسال الله علیه و محمد المحضر.